برنامه از گروه جوان و فرهنگ از گروه جوان و فرهنگ به نام قاوند جان و خرد سرام و درود به شما. همراهان شبانه شب خوبی و براتون آرزومن. گنجینه افسانه های ایرانی عنوان بخشی از ادبیات شفاهی مردمان این سرزمین پهناور نمایانگر فرهنگ اصیل و غنی آداب و رسوم و باورهایی که هویت ما رو تشکیل میدن و در اونها نکات آموزنده ارزشندی نهفته است. در برنامه هزار افسان افسانه ای ایرانی لیوان طلایی رو براتون انتخاب کردیم برگرفته از کتاب قصه های مردم خوزستان گردآوری پرویز طلایان پور در زمانهای گذشته پادشاهی بود که مردم از دست ظلم و ستم اون به سطوح اومده بودن اوزی بزرگان مملکت که اونها هم از ظلم و ستم پادشاه تنگ اومده بودن گرد هم جمع شدند تا چارهی بیاندیشند. بعد از مشارت یکی از اونا گفت دوستان دوستان در نزدیکی خونه پادشاه ماهیگیری زندگیانه بهتره اونا هم با خودمون همراه کنیم همه پذیرفتند و به سراغ مرد ماهیگیر رفتن و به اون گفتند ما فرد شب به خونه تو میاییم تا درباره چگونگی مبارزه با پادشاه تصمیم بگیریم. مرد ماهیگیر هم پذیرفت و برای تیگه قضا به قصد سید ماهی به طرف رودخونه براه افتاد. مرد ماهیگیر تور رو که به رودخونه انداخت ماهی بزرگی و سید کرد. وقتی که خواست اونو به خونه ببره یکی از درباریان که توی بازار بود از مرد ماهیگیر خواست که اون ماهی بزرگ رو به اون بفروشه ماهیگیر اول قبول نکرد اما وقتی مرد درباری قیمت زیادی برای ماهی پیشنهاد کرد مرد ماهیگیر زیر و ماهی رو به اون فروخت و فوراً به نزد بزرگان مملکت رفت و گفت من اومدم از شما عذرخواهی از کنم و بگم که اگه میشه جلسه رو به فردا موکول کنین چون من هنوز نتونستم شام امشب رو تدارک ببینم بزرگان هم قبول کردند مرد ماهیگیر دوباره فردای اون روز به قصد سید ماهی به طرف رودخونه راه افتاد و مثل روز قبل ماهی بزرگی سید کرد ولی باز هم همون مرد درباری ماهی رو به قیمت گرونی خرید مرد مایه‌گیر این بار هم به نزد بزرگان مملکت رفت و گفت شرمندم خیلی شرمندم امشبم نمیتونم از شما پذیرایی کنم ولی ولی فردا شب هر طوری شده جلسه رو برگزار میکنیم روز بعد مرد ماهیگیر ماهی دیگه ای سید کرد و اونو به خونه برد وقتی خواست با چاقو سر ماهی رو از تنه شده کنه چاقو به جسم سختی برخورد کرد مرد ماهیگیر با دقت بیشتری به تن سرد ماهی نگاه کردید که توی شکم ماهی یه لیوان تلایی قرار داره ماهیگیر لیوانو از شکم ماهی بیرون کشید اونو شست و آب و اونو ریخ یه دفعه دید آب هم به شمش طلا تبدیل شد ماهیگیر با تعجب و حیرت دوباره آب لیوان رو ریخت روی زمین دید بله این دفعه هم آب به شمش طلا تبدیل شده مرد ماهیگیر با خوشحالی و ناباوری چند بار آب لیوانو پر و خالی کرد و شمش های طلا به دست آورد دختر پادشاه که توی ایوون قصد در حال استراحت بود از اونجا متوجه لیوان تلایی و شمش تلا شد و فورا به بحانی از قصد خارج شد و به سراغ مرد ماهیگیر اومد و گفت من از توی ایوون دیدم که این ران تلایی آب و به شمش تلا تبدیل می حالا اومدم تا اون لیوان تلایی از تو بگیرم مرد میگیر گفت اما من میخوام اونو به قیمت خوبی بفروشم و با پول اون ازدواج کنم دختر پاک گفت اگه لیوان طلایی و به من بدی من با تو ازدواج کنم مرد ماهیگیر که از پیشنهاد دختر دشاه متعجب شد گفت یعنی تو دختر پادشاه حاضری با من ماهیگیر ازدواج کنی دختر پادشا گفت البته که حاضرم ولی شرمن اینه، اون لیوان طلایی رو به من بدی مرد ماهیگیر هم فوراً لیوان تلایوب به دختر پادشاه داد و چند ساعت بعد آقیدی اومد و اونا رو به عقد هم دیگه درابو بشنوین از پادشاه پادشاه وقتی فهمید که دخترش با مرد ماهیگیر باش کرد خیلی ناراحت و عصبانی شد و به پسرش گفت پسرم این مرد ماهیگیر در شأن خواهرت اشتباه بزرگی مرتکب شده و من از این بابت خیلی عصبانی و ناراحت تو باید رو به خاطر این اشتباه به سزای عملش برسونی پسر با تعجب پرسید سزای عمل پدر؟ پادشاه با خش گفت بله بله این دختری خیر سر باید به سزای عمل برسه تو تو باید اونو به صحرا ببری و چلای حیوانای وحشی رها کنی تا حیوانای وحشی اونو کچه بره کنن پسر هم خواهرش رو به بحانی گشت گذار به صحرا برد اما هرچه کرد دلش راضی نشد که اونو جلوی هیونایی درنده رها کنه بنابراین فورا تا خواهرش از خستگی خوابش برد انگشت رو برید و دستمال جیبی خواهرش رو به خون آغشته کرد و نزد پادشاه برگشت و گفت پدر جان من خواهرم رو جلوی هیونایی درنده انداختم و اونها در عرض چند دقیقه اونو تکه پاره کردن بعد دست به پدر نشون داده گفت اینا اینا دستمال جیبی خواهرم که به خون خودش آغشته شده پادشاه با دیدن دستمال خونین خیالش از بابت مردن دخترش راحت شد را بشنوید از دختر پادشاه دختر وختی از خواب بیدار شد اثری از, از برادرش ندید که ندید هوا تاریک شده بود و دختر سرگدون توی بیابون میگشت که یهو صدای زنگولهای به گوشش خورد اون به طرف صدا رفت دید که چوپونی با گوسفندش در حال گذر از اونجاست دختر به اونا نزدیک شد و به چوپون گفت اگه من به تو یه سکهی طلا بدم آیا حاضر میشی یک گوسفند به من بدی البته من فقط به پوست این گوسفند احتیاج دارم چوپون قبول کرد دختر فکری کرد و ادامه داد ببینم یه دست لباس اضافه داری که به من بفروشی چوپون مکسی کرد و رفت و از پشت سنگ بزرگی چند که لباس ورد و به دختر پاد شد سکه یه به چوپون داد و لباس های چپون رو پوشید و پوست گوسفند رو هم روی سرش کشید و یه چوپون کچل. اون وقت به طرف شهر به راه افتاد. دختر پادشاه رفت و رفت تا به دکان کباب بزرگ رسید. همون جایی و به سیخهای کباب که توی سیمی با دقت خاصی چیده شده بودن نگاه کرد. صاحب دکان کبابی گفت: "بزرجان چی می‌خای؟ اینجا چیکار دری ها؟" دختر سخت گرسنه بود با صدای ضعیفی گفت: "من من نم میخوام یه میخوام حاضرم به بیگ، براتون کار کنم." صاحب دکان کبابی نگاهی به دختر پادشاه انداخت و گفت: "ولی من اینجا کارگر دارم و دیگه نیازی به کارتون ندارم. اما میتونم تو به یه زن و مرد مهربونی که بچه ندارن معرفی کنم اونا حتما تو را به عنوان فرزندشون میپذیرم و بعد دختر رو به مغازه قنادی بزرگی که روبروی دکان خودش برد و دختر رو به اونها معرفی کرد صاحب قنادی از دختر پرسید اسم چیه؟ دختر که حالا به صورت پسر بچهی در اومده بود گفت اسمم خدا مراده و از اشایرم من از خونوادم دور افتادم و راهم و گم کردم حالا هم نیرم تو این شهر غریب چیکار کنم مرد غنات گفت خب ببین خدا مراد حاضری با ما زیگانی من و زنم تنها هستی و فرزندی نداریم تو میتونی از همین الان پسر ما باشی و از این غریبی و بی کسی نیاد پیدا کنی. خدا مراد یا دختر پادشاه فکری کرده گفت باشه باشه قبول میکنم پده جان مد غناد با خوشحالی خدا مراد رو به خونش برد تا زنش رو هم از این ماجر خبر داد. مدتی گذشت مرد و زن قنات خدا مراد یا همون دختر پادشاه رو توی مغازهشون آوردن تا کمک دستشون باشه خدا مراد هم با دل جون براشون کار میکرد و از اینکه سرسامونی گرفته بود خوشحال بود تا اینکه کم آثار بارداری در دختر پادشاه نمایان شد دختر بیچاره مونده بود که چجوری به مرد و زن قنات بگه اون دختر پادشاه نه خدا مراد و به اونا بگه که زند ماهیگیریه که مدت هاست ازش خبر نداره و این چی که تو شکم داره بچهی مرد ماهیگیره در به فکر چاره افتاد و بالاخره به مرد غنات گفت پدر جان تو مادر خیلی خسته شدین بهتره برای استراحت مدتی از این دور بشین و سری به اقوام و فامیل بزنین خیالتون هم از بابت مغازه و خونه راحت باشه. من خودم مراقب همه چیز هستم. مرد و زن قناد قبول کردن و نزد فامیل و اقوامشون به شهر دیگه رفتن. دختر هم بعد از چند ماه موقع وضع حملش رسید و خداوند به اون پسری زیبا داد. بعد از دو سه روزی که از تولد پسر گذشت، دختر پادشاه نزد نجار رفت و از اون خواست صندوق محکمی بسازه که آب داخل اون نفوذ نکنه بعد سرش رو داخل سند گذاشت و به جریان آب سرد و گفت ای خدای مهربون این مال حلال رو به دست صاحبش برسون ای خدا و بعد جریان آب صندوق رو با خودش برد اما بشنوید از حال و روز مرد ماهیگیر مرد ماهیگیر از رفتن زنش که همون دختر پادشاه باشه خیلی ناراحت بود ولی از ترس پادشاه جرأت نمیکرد چیزی بگه اینکه روی کنار رودخونه نشسته بود و داشت ماهی صید میکرد که یهو دید صندوقی روی آب شناوره فورا صندوق رو از آب گرفت و در اونو باز کرد و دید که داخل صندوق یه بچه و مقداری پوله ماهیگیر که از دیدن بچه خیلی خوشحال شده بود با حیجان گفت بچه یه بچه زیبا و قشنگ خدایا از اینکه برام یه هم نفردی و از تنهایی بیام از تو سپاس گذارم بعد فورا برای بچه دایهی پیدا کرد تا به اون شیر بده ازش موضوع کنه سالها گذشت و پسر بزرگ و بزرگتر شد و از اونجایی که خیلی باهوش و زرنگ بود مرد ماهیگیر اونو، مکتب خونه فرستاد تا درس بخونه اتفاقا پسر با بچه های پادش توی یه مکتب درس میخونه. روزی روزها پسرهای های به پدرشون گفتن پدر هیچ میدونستی پسر مایگیری کمسایه یاست، خیلی باهوش و زرنگه و تو گایی به معلمم ایراد میگیره اون خیلی دانا و باهوشه خلاصه پسرها اونقدر از هوش و زرنگی پسر مایگیر برای پادشا ترگیردن که پادشا گفت فورا اونو بیاریم پیش من تا اونو امتحان کنم ببینم باقی زرنگ و باقی اون روز پسرهای پادشا به پسر مایگیر گفت فورا بعد اتیر شدن کلاس با ما به خونهمون بیا تا بیشتر با هم بازی کنیم در مرد مایگیر گفت باید از پدرم اجازه بگیرم پسر بس تعطیل شدن کلاس به خونه رفت و به پدرش گفت که اگه اجازه بده فردا به خونه پادشاه بره و با پسرهای اون بازی کنه. اما مرد ماهیگیر به محض شنیدن این حرف نگران شد و به پسرش گفت نه پسرم تو نباید به خونه پادشاه بری. و پسر که از این پدرش دوچار تعجب بود ادلت نگرانی و مخالفت اونو پرسید ولی مرد ماهیگیر چیزی نگفت. و فورا همراه پسرش شهر رو ترک کردن بردهای اون روز بچه ها دیدن که پسر ماهیگیر به مکت نیومده به خونه که ورشن به پادشا گفتن امروز پسر ماهیگیر به مکتب نیومده بود پادشاه که کنجکاف شده بود دستور داد تا چند نفر برن و از در و همسایه پرسجو کنن که ببینن این پسر کجا رفته و چرا به مکتب نیده افراد پادشاه، هرچه پرسوجو کرد چیزی دستگیرشون نشد که نشد پادشاه با کنجکاوی زیاد همراه وزیرش سوار بر اسبش شد و بهدنبال پیدا کردن مرد ماهیگیر و پسرش راه افتاد و رفتن و رفتن تا به شهری رسیدند که مرد ماهیگیر و پسرش به اونجا فرار کرده بودن اتفاقا این همون شهری بود که دختر پادشاه در اون زندگی می‌کرد. خلاصه توی یه شهر گشتی زدن تا اینکه گذرشون به مغازه غنودی افتاد پادشا و وزیر داخل مغازه شدند دختر که در لباس پسرونه در حال کار کردن بود تا چشش به پادشاه و وزیر افتاد لحظه ایستاد و با دقت به اونها کرد و بلافاصله فاصله اونها رو شناخت. چند لحظه بعد هم مرد ماهیگیر و پسرش وارد مغازه غنیدی شدن دختر خیلی زود شوه و پسرشو شناخت به همین دلیل هم جلو رفت و خطاب به پدرش وزیر شوه و پسرش گفت خیلی خوش اومدین من میدونم که شما برای پیدردن گمشده خودتون به این شهر اومدید من من میخوام حقیقتی رو براتون آشکار کنم همه آج و هاج به دختره که فکر می کردم پسر روا کردم دختر پادشا رفت و چند لحظه بعد لیوان طلایی رو به اونهاشون داد و گفت خوب به این لیوان نگاه کنین و بعد با لیوان آب به شمش تلا تبدیل شد پادشا که این سحنه رو گفت ای پسر این لیوان چند میفروشی دختر پادشا پوسخندی زد و گفت من نیازی به این پول ندارم و بعد با بغز و ناراحتی گفت من من دختر شما هستم همون دختری که به خاطر ازدواجش با مرد ماهیگیر دستور دادی او جلوی حیونای وحشی رو در رها کنم من به خواسته خدا زنده به مرد همسر منه و این پسر فرزندم پادشاه در مابل دخترش زانو زد و گفت دخترم منو ببخش من اشتباه کردم بعد رو کرد به مرد ماهیگیر و گفت تو هم منو ببخش که سالهای سال تو را از زن جدا کردم منو ببخشی و بعد نموش در روحوش همه به خوبی و خوشی سالها سال زندگی سال کردم کردم. به نقل از کتاب قصه‌های مردم خوزستان راوری پرویز طلایان پور که امشب این افسانه رو براتون خوندم در روزگاران کهن که عامه مردم دانش و سواد چندانی نداشته افسانه ها و قصه ها از مناسب ترین غالب ها برای انتقال تجربه های فرهنگی بودند افسانه ها تجربه های ارزشمندی رو درباره مناسبات تولیدی روابط اجتماعی قوانین مدنی سنت‌های های ملو در خودشون جا می‌دادن. تقریباً تقریبا از همون موقعی که افثانه ها به بزرگان قوم و قبیله از اونهای آموزش کودکان بهره می باردن. هزار افسان کار مشترکی بود از نویسنده و سردبیر زینت سالپو ویراستار بهاره گیویان اجرا مهران دوستی صدا راهله راحلهی قفاری تأیید کننده زهرا عبدالله زاده تا افسانه دیگر بدرود